کیران سرم عشق جوانی به سر افتاد وان راز که در دل بنه افتم به در افتاد از راه نظر مرغ دلم گشت هوا گیر ای دید نگه کن که به دام که در افتاد دردا که از آن آهوی مشکین سیح چشم. چون ناف بسی خون دلم در جگر افتاد از ره خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سهر افتاد مجگان تو تا تیغ جهانگیر براورد بس کشته دل زنده که بر یک یکدگر افتاد بس تجربه کردیم در این دیر مکافات با دورد کشان هر که در افتاد بر افتاد اگر جان بدهد سنگ سیاه لان نگردد با تینت اصلی چه کند بدگوهر افتاد حافظ که سر زلف بوتان دست کشش بود بس طرف حریفی است که شکنان به سر افتاد